بسم الله الرحمن الرحيم خاتمه خاتمه خب خاتمه يك سرقه الكلام انوعه دوزدي سخن اه دوزي دي مطالب ديگران كي اين روزه ديگه خيلي رائج چي اين روزه ديگه خيلي رايد شده ببین دزدی فقط در مادیات ابن نیست جرم نیست باقی در امور دیگه هم چی جرم هست دیگه کسی دزدی به چشم تو گذاسته کار کرد در معنویات در معنویات قطع دست نیست سرقة الكلام انواع سرقة الكلام انواع است منها یکی از نمونه هاشیه خوددا ناف رو او شاعر معنا لغایریی بوددون یکی از انوا سرقت کلم اینه که اون ناثر اونی که نصر می نویسه او شاعر یا شاعر شگو برداره معنای شخصی دیگر رو بدون اینکه اون نظم رو چیکارش بکنه؟ تغییرش بده جمل رو به عینه‌ای بدوسه به عین کار بکنه کما اخذ عبدالله الله ابن الزبير بيتي معنل همان طور که عبدالله ابن الزبير دو بیت معن رو دزیده برداشت و و دعاهما لنفسي و ادعا که اونا مال خودشه و هما اون دو بيت هستن اذا انت لم تنصف اخاك وجدته على طرف الهجران ان كان يعقلو. ويركب حد السيف من ان تضيمه اذا لم يكن ان شفره السيف مزحله میگه زمانی که تو انصاف نکنی برای برادرت عدالت نکونی او اورو که مائل ب هجران میشه از تو اگر عقل داشته باشه از تو فاصله میگیره و سوار بر تیزی شمشیر میشه به جای این که بر او ظلم بکنید دامه ی یا دیمو آه؟ مال شما تارو و زمه داده یا فتحه؟, فتحه و این کتاب یعنی کتاب عربی در رسول بلاغ داده ولی اشتباهه چون این دامه یا دیمو هست یعنی ستم کردن یعنی زمهش داده باب افعالش برده منس. تضیبه هون سيفي من ان تضیمه از بله و سوار تیزی شمشیر می شود بجای این که بر او ظلم کنی یعنی بجای این که بیاد پیش تو بشنی و بر اش کنی میره مشکلات و تحمل میکنه میری ایجای دیگه کجایی؟ خونه خوب دو خوب دوش منه این؟ این کلتی رو این کلتی رو داره این کتاب هم اشتوا داره بله این من مال شما نوشته من این تضیمه این مال من عربی نوشته تضیمه خب مشکلی نیست اینا حرکات حرکاته و یرکب حد سيفي من ان میگه سوار بر تیزی شمشیر میشه مشکلات رو ترجیح میده به جای اینکه برش ستم کنی زمانی که نبود از تیزی شمشیر جای فراری جای پناهی جای رفتنی اگر چاره ای نبود از این که این چارش فقط این بود که تیزی شمشیر رو تحمل بکنه اون رو تحمل میکنه بله خب این شعر در جواهر البلاغه هم اومده اونجا استاد حسن عرفان همینو ترجمه کرده و مثل هذا یسم نسخا و انتحالا این دوزی که به عین شما بیای عبارت به بدوزی بهش میگن انتحال همون سرقت ادبی نسخ و من قبيله ان تبدل الالفاظ ان بما يرادفها از همین نو هست إن كألفاظ بدل بشه بمرادفه شو يعني لفظ بيات ب بم... همعنىش تعقيب بده كان يقال في قول الخطيئة ما ندي إن كده قول الشاعر خطيئة وفتشوده دع المكارم لا ترحل بغيتها وقعد فإنك أنت الطائم الكاسي مكارم رو هر کنوا بگذار برای طلبشون سفر نکن بنشین همان تو خورنده او پوشنده هستی تو دنبال کارای بزرگی ها نرو آ؟ تو بشین بخور بخور و بخواب همون تحنه میزنن میگن دیگه تو برای خوردن درست شدی خب یکی دیگه اومده همین شعر رو فقط الفاظ با مترادف ها تغییر داده آ؟ بجای مکارم گفته مآثر بجای طائم گفته آکل بجای کاسی گفته لابس ها هم معنیان ولی منطقه لفظ و تغییر داده دا. بجای دع که ترکن ذر در قرآن هر دوتا اومده بله. پس شاعر گفته دع المکارمه این گفته ذر المآثره شاعر گفته لباغیتی این گفته لمطلبی ها شاعر گفته واقعه این گفته وجلس شاعر گفته عطائم این گفته آكل شاعر گفته آلكاسي اون شخص گفته اللابس اه؟ این هم سرقت عادیه ورل المآثر از ارزش ها رو با بگذار لا تظلم لی لا تذهب لی مطلبه ها نباش وجلس بنشین فانک انت آكل و لابس همان تو پوشنده پوشندگی پس این هم از نوعمون انتحاله و قریب و منه و نزدیک به همین نوع سرقت ادبیه این کار اینی که جلوترمیات انتو بدل الالفاظ بمایوزاد دوها في المعنى مع رعایت النظم والترتیب الفاظ تبدیل به زدشون بشه اونجا اومده بود الفاظ به تبدیل به مترادف بشه اینجا تبدیل به متزادش بشه ولی اون نظم و ترتیبه شاعر قبلی چه بشه؟ رایت بشه همانطور که در قول حسان گفته شده بیدل وجوهی حسان یه گفته یکی دیگه اومده با متضاد اینو تبدیل کرده بیدل وجوهی کریمتون احسابهم شمل الانوفی من التراز الاولی سفید چهره اند نیک حسب و نیک نسل اند. دراز بلند بینی اند از تراز اول اند در مجد بزرگی شاعری دیگه اومده اینو دوزی کرده تبدیل به متضادش کرده گفته سود الوجوه اون گفته سفید چهره این گفته سیاه چهره اون گفته کریمه آه... احسابهم این گفته لئیمه احساب ها رو آوردی اون گفته شمم الانوف این گفته فتاص اون ها اونایک کوچیکی داره کل گفته ده. خب سیاه چهره اند بد حسبند پس حسبند خوابیده، بینی ند، اون بینی های کلوفتی هست، چهسی بوده؟ کوتاه بار، کوتاه و از تراز آخرند. او این هم شد از نزدیک بهمون نوع اول و منها و یکی دیگه از انواع سرقت ادبی اینه که ان یاخذ ان يؤخذ المعنى ويغير اللفظ لفظ معنا برداشته بشه و لفظ تغییر بکنه معنا برداشته بشه و لفظ معنا رو به وسی و یکونو كلام ثانی دون الاول او مصاوي له سخن دوم پایینتره الله هذا أدبي السخن أولاً يا مصاغية بعونه كما قال ابو الطيب في قول أبو تمام أمان ترك أبو الطيب در قول أبو تمام قفته ههات لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيله أعد الزمان سخائه فسخاه به ولقد يكون به الزمان بخيله بين إن الزمان بمثله لبخيله دوفم قفته ولا قد يكون به الزمان بخيله هم المعني ربع الفاظ الدجاج أفرد حیات دور شد بله. از... زمان روزگار شخصی مثل او رو دیگه نمیاره ممدوحش رو داره که مرده این شیعه رو میگه لایعت زمان رو به مثله روزگاه دیگه مثل اون نمیاره در قران هم اومده است اذا حلک قلتم در مورد یوسف بله بعد از اون دیگه رسولی نمیارد میگه بعد از اون زمان مثلش رو نمیاره همان زمان به آوردن ماننده او بخیل است. اوزگار به آوردن ما انسانی ماننده او چیه؟ خب همین معنا رو شاعر دیگه در بیت زیری در مصره دوم آورده با الفاظی دیگر اعدال زمان سخاوه سخاوت او به زمان هم سرایت کرد واگیر شد پس به او سخاوت کرد و لقد يكون به الزمان بخيلاق و زمان وزمان نسبت به او بخیل میباشد یعنی انسانی مثل او دیگه نمیاره فالمصرع الثاني ماخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام مصرع دومه ابو الطيب گرفته شده از مصرع دومه ابي تمام و الاول اجود صبکن سبک اولی ان الزمان به مثل لب بهتره و مثل هذا ی صم اغارت و مسخ این نو سرقت ادبی رو اغاره و مسخ می نامند پس یکی بود اه نسخ و دوو می اغارت و مسخ و منها و سوومیش أن يأخذ المعنى وحده ويكون الثاني دون الأولي ومصابيا له كما قال أبو تمام في قول من رث ابنه نوع السفو منه كمعنى رو تنهاي بارب داره و دفمي یا درس پاينتره از اوليه در سبك و یا مصابي شه منطر كأبو تمام در قول ون شخصي كه سرش رو رسا کرده میگه مرسیه خونده براش و صبرو یحمدو فی المواع تنی الا عليك فا انهو لا یحمدو این شاعر رو شخصی در مرسیه گفته صبر در تمام جاها پسندیده هست پسندیده میشه جز بر تو جز بر تو که در این موقع و جایگاه صبر چیز, چیز پسندیدهی نیست یعنی اینجا دیگه انسان بگریه اینجا دیگه صبر نکنه برای رفتن همچون تو دیگه صبر پسندیده نیست. خب شاعر بعدی اومده اینو به این شکلی گفته و قد کان حودعا لا س صبر حاض من و اصل حیود حظ میگه قبلا ها چون این بود که کسی که لباس صبر رو بتن داشت حازم خونده می شدد قوی اراده خانده می شود. ولی الان دیگه زمانی حازم نامیده میشه که جزاء و بزر بکنه چکار بکنه؟ بی صبری بکنه بی تابی بکنه همون معنا رو آورده و هاده یوسم با و سلخن این نورو علمام و سلخ میگند پس سرقت ادبی با انو شد دو ال اقتباس دو چیزی که در خاتمه آورده اقتباسه هو ان یضمن الكلامو، شیئا من القرآن او الحديث لا على انه منه كقوله قون بشه در کلام چیزی از قرآن یا از حديث نبین ینوان که از قرآن و حديث ما نند قوله این لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم وانكر بكل ما يستطاع يوم يأتي الحساب ما ظلوم، ما من حميم، ولا شفيء يطاع ظالم ما باش و به زلم راضی میشو، و انکارش بکن به هر آنچه که توانسته میشه. روزی که حساب و کتاب میاد برای زلم کننده هیچ دوست و هیچ شفاعت کننده ای که سخنش بذیرفته بشه وجود نداره. خب اینجا من حمیم ولا شفیع یطاع در قرآن و مدد جمال الظالمین من حمیم ولا شفیع هذا هو اقتباس هل يمكن أن يكون اقتباس؟ اقتباس مثالي ديگر و قوله از حديث اقتباس شكارده لا تعاد الناس في أوطانهم قل ما يرعى غريب الوطن وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن بالي ميجي دشمني مكن با مردون در وطنشان در وطنشان با مردم دشمنی مکن بله کم است که غریب مراعات حال بشه و زمانی که خواستی در میانشان زندگی کنی با مردم به اخلاق نیک رفتار بکن با اخلاق نیک نیک, نیک چکار کار کن؟ اینو از اون حدیث گرفته که و اتبع السیئة الحسنة تمحوها و خالق الناس بخلوقن بعد از بدی نیکی کن و با مردم به اخلاق نیک رفتار کن این همه اقتباس از حدیث شد و لا بأس بتغییر یسیر في اللفظ, في اللفظ المقتبس للوزن او غیره موردی ندارد که تغییر کوچیکی در لفظ بیاد زمانی که اقتباس میکنه ها شما موقعی میخواد از یک آیه اقتباس کنی یا از یک حدیث تغییر کوچیک درش بیاری موردی نداره به خاطر راحت کردن وزن وزن شعریه دیگه نه مانند قد کان ما خفته ان یکولا انا الی الله راجعون انا لله و انا الی الال... الیه راجعون یک کمی تغییرش داده یک کمی چیکارش کرده اِنَّا لِلَّهُ و إِلَهِ که می تغییر داده؟ میگه قد کار با خفته ان یکونه اون چیزی که ازش میترسیدی که انجام بگیری اون انجام گرفت قد کانه شد ما خفت ان یکونه اون چیزی که ترسیدی که بشود اِنَّا إِلَى اللَّهِ راجعون همان ما به سمت پروردگار باز میگردیم. و فی القرآنی در قرآن اومده اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِهِ رَاجَهِ اینو یک کمی تغییر داره. پس در اختباس اگر کمی تغییر بیاد مشکلی وجود نداره.